خب استاد جنیدی بفهمید ادامه داستان جان. حالا بگید استاد من demiştim avat 6. شیبست روی 26 دفتر سوم شاهنامه فردوسی ویرایش استاد جنیدی هست شما شاهنامه‌تون که باز هست از همون جایی که حالا داستان کی خسرو هستش در اون بخش شما باید مطالعه بسن. دوباره این دوبیتو میخونم چون این گروفزان پس با آواز سخت که ای سخت پیروز وقت سخونهای دستان شنیدم همه که بیدار بکشاد پیش رمه به دارند یزدان گیهان خدیف که من دورم از ماغ و فرمان دیو. به یزدان گراود همی جان من که این دیدم از رنج درمان من کنون من تو کین پدر خواستم جهان را به پیروزی آراستم شدم سیر از این لشکر را تا و تخت سبق گشتیم و بستیم رخت جنن گفت پس شاه بازار زر که اکنون ببندید یک سر کمر سراپرده از شهر بیرون برید درخش همایون به هامون برید به هامون کشیدند ایرانیان به فرمان ببستند یک سر میان شنش شو بر تخت زرن نشست هستی که گرزه که پی کرده نهاده همه به همه نمونه آمده نهاده همه چش بر می شو معلومه که توخن اینطور بوده که نهاده همه چشم بر چهرش را بدان تا چه گویده کار سپا با آباز گفتم زمان شرح یارکی نام داران بهروزگار هران کسی که دارید رای و خد بدانید که نکوبت بگذارد همه رفتنی ای ایم و گیسی ایتی پنج؟ چرا باید این دردو هم توح و رنج بکوشیدم و رنج بردم بسی بس ندیدم که ای در به مامد کسی کنون جامو دلزین سرا سراوی پنج بکندم سراو بردم این دردو رنج از اینجا که روی دیویست نمازم ما هست تواز روی سی ست و یعنی یازده صفحه افزود است. خیلیه. بله اینطوره. تو سوی داور پاک خواهم شدن. نبینن همین راه باز آمدن. تو این یازده صفحه چی همینطور اون بود اون بخشی اونو کرد اونو. مثلا اومده که در این چیزها در آذربایجان یک گله اصل بزرگه من اینو بخشیدم به توس توس از خورستان بره آذربایجان که گله کل برد بعد وقت یک گنجی پنها هست در خراسان این بخشیم به گوده هست که سپهسالار ها رو یعنی کردستان ها آزربایی چیزهای یعنی این در حقیقت و ششینی و تیر روزی و حقارت اندیشه نمی‌دونیم که محب بااد شماون رو میگفتن دروغ دروغ و درو در برابرش پول می گردن. خب خ اینجا همینون کار دیگه میخواستن در ازای هر ه که یه در قبل بگیرم دیگه هست چون چی میشون تنگ بود فقط به این جو چیز در یک چین موقعیتی ای که یک واقعی سنگین طبیعی در ایران رخ داده با, با این گفتارهای شنامه که انقدر واقعا تأثیر برانگیز هست حالا صحبت کردن از می چطور چهار تا یه دونه انگوشتر رو دادن شرشمشیر رو دادن به کیم فلان اما گله اصف بکی اینا واقعا شرماوره ولی خب بیاری اصلا اینا زدوده شده از شان حالی جا جایی سخنان نیست نفر می فرموندیم سوی داور پاک خواهم شدن نبینم همین راه باز آمدن این, این چیز میکنم که یک برده یه بیتای از همپی بسته رو بخونم که ببینید پیشین این بود بکشیدم و رنج بردم بسی بس ندیدم که ایدر بماند کسی کنون جان و دل از این سرهای بکندم سر آوردم این درد و رنج سوی داور پاک خواهم شدن ببینید به همپی بسته نسید همه مونکنجان سی اروزی و چشم تنگی پست مزدور در بار غزنه بود که حسودم سوی دوبار پاک خواهم شدن نبینم همین راه باز آمدن مجویید از این رفتن آزار من که آسان شود راه دشوار من از آن جایگه ترنگ بسته میان بگردید و گرد ایرانیان که زیدر به ایوان خرامید زود مدورید در دل مرا جز درود درودی درو هم درستی منو بخواید که برم یعنی درستی منو خوبی منو بخواید که برم برفتند با او حدیران سران بزرگان بیدار و گندابران خروشان و جوشان ذکردار شاه کسی را نبودند رنج راه. به دان میتران گفتیم که او ساره همه بازگردید میشن هریار نگشتن زو باز پس توس و گیف همون بیژن و هم برز نیو من اینجا رو با توجه به رویدات هایی که رخت داده و دانش زمین شناسی اون رو تایید بکنه از روی نویشته های مختلف این رو این بیت رو پیجنال میکنم نگشتند از رو بیژن و توس و همون گسته هم با فری برز نیو این چند نفر باز نگشتن بقیه بازگشتند یعنی روستم زال همه اینا زنگ همه بازگشتن فقط هم این چند نفر بودند بهرفتند یک روز و یک شب هم شدند از بیابان و خشکی دو به یکی چشم آمد پدید جوهان جوی ه کی آنجا رسید بدان آب روشن فرود آمدند بخوردند چیزی و دم برزدند دم بر برزدن، برزدن، یعنی آرام گرفتند یعنی با آرامی نفس کشیدن با آسایش نفس کشیدن بدان آب روشن فرود آمدن بخوردن چیزی و دن برزبن چاشین گفت با نام بر که باشید پدرود تو جا بدان کنون چون برارت سنان آفتاب نبینید دیگر من جز جزب خواب شما باز سینجی گفت خشک کجا بشکند شاخ و ببخشید مپایید دگر بارد از ابر مشک زه کوهنده که باد سخت کجا بشکند شاخ و رخت درخت ببارد بسی برف ضبر سیا شما سوی حیران نیابید راه سر مهتران زانس خون شد گران بخوستند با درد کن این دوار دوار خیلی سخت طبیعی پروژه سرمایی که تامیشانسی امروز زمانش رو معین کرده به شما که این سرما رو تامیشانسی امروز در بعضی از نقاط شمالی بررسی کردن از جمله در در, در, در زریوار کردستان که اون زمان اینا همه با آذربایجان یکی بودند. آقای توکوپرفسیان یارو آوره ما و استاد سی بزرگی جهان گفت که در برگاهی زیر گفتم من از شوانم چند جایی رو پیدا کردم گفتم چطور ممکنه چین چیزی گفتم پیدا کردم حالا تو داستانی رو بیاد میبینید که شوانمه من از چهز من منو نمیتونم سور بکرم سرم احترام زن سخون شد گرام با درد آن دوبرم. بید شما هم بنوید که حالت هم به خود خش استسای جدی حالا شاید شما خیلی از سرونندگان دونید هر, هر متترسل میشنیم چ کلان نمیتونن بیا گونشون میگیره و صفهشون میگیره این حالت ما حالا این فوتی از این فرصت استفاده کنم و چالات شما محثرکن پراممهایی که رسیده برای ما و ار میکن. از استاد در نمادین بودن گلز گاف به سپاس به با بامداد از سری سپاران. تو وقت پر بامدادی سری از سپاران. برای اینکه باوبلیان انتظار اون باند بیفرش با بر بعدها زحمت شدن، یه هنگام که دیدند که ایرانیان با گاو زندگی خودشون رو به برقراری شکوف زندگی خودشون اعلام می‌کنن، پی ایران حمله بودند در مناطق مختلف، هر جا کوف می‌دیدند می‌کشتن. و به بیشه فرزندان که پسران که به کوهسار پناور بودن باید با این شیری این گاوان زندگی میکنند که از مادر دور بوده و وقتی که خوب فریدون پیروز شد و اون زمان زمان فلز بود یعنی آغاز فلیز بود و ایران بود اون وقت ایرانیان برده رو بشه که سرگو آفتار یعنی به انتقام و قوان ایران که کشته شدند. و ما میبینیم که این گوزگاه سر دست پهلوانان ایران هست. گوهگاه در دست پهلوانان توران است هست. بلیه خموان ایرانی بودن. که رفته بودن از این ورز. مثلا در دست خموان هست. دست در مثلا پیران هست. ما هم با این در حقیقت اصیه از ایران رفته بودن. و گوزگاه سر رو هم راه یعنی حمله و کشتاره که افغای این سرزمین رو که به نابودی و بیرانی می و بعدها ایرانیان به این ترتیب نشون دادند که ما زنده هستیم و با همون در حقیق را بیاد همون کشاورزی وزیر گفتاری و روانه به که در ایران بود ما دشمنان ایران مبارزه میکنیم این با من میدونم دونم باستر جلیدید واسه خوشم می دونم, با با می دونم. بارم سوال شده سوال کردن، کردند اینا هیدری ای پرسیدن که در دوران با دونود و سلام و تبریج ایده نوروز به رسوییت ها زیاد هستش من نمیتونم چیزی کنم همه خودم میخوام استاد برای مصاحبت بکنم و سورا شما پاسخ داد. با دونود و سلام ایده نوروز در شما مبارک باشه اد جنیدی در دوره فعلدی ما چه نیازی به رستم و پهلوانان دیگر داریم. حافظه ای انسان یاور و اوست در انجام کارها یعنی ما خودمون اگر حافظه را از دست بدیم صورتی یک انسان دیوانه درمیاریم این حافظه است و این نیرویی که از گذشته داریم و در تمام مدت زندگی ما رو اداره میکنه به پیش میبره یا اینکه کاهکاه از این حافظه خودمون لذت میبریم به یاد یک منظره خوب یک رویداد خوب میفتیم و مدتی از زندگی بهره میبریم این اینکه در بسیاری از مسائل ما میتونیم که از حافظه خودمون یاری بگیریم برای پیش بردو کار هم. و شاهنامه حافظه تاریخی بزرگ ملت ایرانه و ما با این حافظه میتونیم برنامه های قنیده رو به پیش بباریم اما اون چیزی که من خودم بارها و بارها بش اینه که با رستم شما میتونید فرزندان خودتون خوب درطرریخته بار این تربیت خواهید بارها من دیدم که مثلا یه بچه غذا نبرد بعد حالا مادرش به جزه که آها دوستا غذا خوب میخورد که پرواز شد فوریش بچه شده که توخوردمبلکه شد. مثل رستم بشه اول با شخص رستم برای بچه شهردید تمام بود این, این. حال یه بچه ق کرده بود و هیچ وقت قر نمیکرد. فوری میدی بچه کلا انشود من بارها بار نه یک بار دو بار شما هم آبیه دلیل انتخاب کنید آیا دلیلی آیا <تصفح> دلیلی اون دلیل من دلیلی که برایم یه باد تجربه شما که بچه تو بزرگ است بگید آدم نباد دیگه من دل. باید بگیم خیلی مهمه این گفتن این تریف کردن هتل بچهای بزرگ هتل که ازدواج کرده باشه بچه باد بگیم این تربیت نمی اینو من که امتحان کردم روی صدها نفر شما روی فرزندان خودتون امتحان کنید اول شخصیت درستن روش کافید و بعد به این با برستن بچه رو هدایت کنید اما یه چیز دیگه هم هست که در رویدادهای تاریخی و پیش،, پیش آمدها انسان باید قرور داشته باشه که بتونیم با اون پیش آمد مبارزه کنیم اگر غرور نداشته باشیم جلوی پیش آمدهای سخت هم ما همین نکنیم ایران و همون دواران هستن دلیران هستن که در رأس همه اینها رست هم قرار داره ما این دقیقت قرور تاریخی رو باید داشته باشیم تا در پیشانات های سخت آینده شکست نخوریم. خوشت... به پیرور برد حرکت کنیم بریم. کنیم به اینجا بعد ازم کنم خدمت شما سلام برد بخونم سلام سال نو بر شما مبارک خسرو به چه معناست خسرو در بسابود هاو سرونگ هاو یعنی خوب کم کم هاو تبدیل شد به خوب در زبان فارسی در پالوی شد هو در فارسی شد خوب و خوب سرونگ یعنی سروده شده نیک سروده شده کسی که نام او رو نیکی می سروند. بنابراین معنی خسرو البته با تلفز خسرو میدونی که حسروانگ بود در پلاوی شد خسرو در شد خسرو و ما تلفز خسرو رو در دو جا هنوز داریم یکی وقتی میخوان بگیم خسروان بگیم خسروان نمیگم خسروان یکی میخوان بگیم خسروی خس... این خسرو خود تونشون میده خسرو یعنی کسی که نیک سرده شده یعنی مدل نیک نامه کسی که با نام نیک از او یاد میکنه من سوال دارم اینجا ام میخوام توضیح بفرمایید نمیدونم چیز هسته شد نمیدونم چیز اما نام یعنی چی؟ استاد اسم یعنی چی؟ ریشه این دوتا چی؟ نام از همون نامیدن فارسی اسم عربیه اونم هم بازا همون سومه ای اینها یعنی نامیده شده تقریبا همون ترجمه این نامه از نام نامیدن نامیدن سلام از استاد سوال کنید که نام های ایرانی آیا در میان نام های ایرانی نامی هست که معنی آن یاری دهنده باشند بله این واژه در زبان پرده بود ادیار و ادیاری بعد وقتی که ما خودمون واختیم این دی تبدیل شد به یه چون میدیم ده ممکنه به یه تبدیل بشه پدر میشه پیر در بسیار از بویشوی خب شد دو تا یه وقتی پروه هم بیاد شد خب وقتی خودمون خودمونو باختیم این رو با عین نوشتیم و فکر کردیم که این واژه واژه عربیه در حالی که ادیار ایار یعنی و ایاری رو با علف باید نوشت یعنی یاریگر یعنی کسی که یاریش به میرسه بل. خب یه دیگه می پهمش بخونم با سلام و درود فرابان و تبریک سال نو و نوروز پیروز خدمت استاد جنهدی استاد آیا کلمه آیرنا آیرنا معنی خاصی دارد با سپاس فراوان علی استفران شد باشد این رو یه مادر یا یه پدری از روز مثلا اعیر یعنی حتما گذاشته این بوجه در اوستود اعیر یعنی که در پهلوی شده ایران بر فرصه همین ایرانه که ما میگیم ایران حیر یعنی به منی ایرانه حالا اون یه خود تغییر بیشه شما شنونده برنامه پنجره های رو به مهداف هستید استاد فریدون جنیدی برای ما از شاهنانه میخوانند داستانخواه شاهنانه میخوانند جمعز گوشواری میکنند با تلفن های 222 4185 222 5882 و شماره پیامک سی هزار 558 تماس بگیرید پیامک بفرستید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید استاد جونیدی پاسخ خواهند داد نگاه برنامه ما یک نگاه پژوهشی هست و استاد جونیدی برای ما این پژوهش رو انجام میدن و جرقهای است برای ما برای اینکه خودمان پیگیر باشیم و بیشتر بدانیم و بفهمیم از کنم برای شما پرمکای زیادی از شما رسیده که من از استاد میخوام یه خواهشی بکنم حالا دارید یه بخش دیگه ای رو برای ما بخوانند تلفن ها هم هست با امید خدا پرش کنیم که استاد قاستو خواهند مطاقی بخش دیگه ای رو بفرمایید از داستانی که خسرو و ادامه رو داشته باشیم این شالا با سؤالات که مرومت جد کرد شما خوشید کو خوشی ششمه مهان شاه شد نابدید برفتند زن جای ده شاه جوی بریگ بیابان نهادند روی همه تنگ دل گشته و تافته سفرت زمین شاه نایافته خروشان بدان چشمه باز آمدن خور از قم دل و با گداز آمدن همون که باد و عبر هوا گشت بر سامن چشم خوش هبر که برفر, برفر زمین با بانده کشید نبود نیزه نامداران پدید یعنی چوس و بیژن و گستن فری برز و خیف هم رفتن سیر بر اون سرمایه گسترده بوده که دریان زمین سا خصوت. اوزان رو رستن بران کورسار عوازال و گودرز و چندی سوار ببودند یک هفته بر پشت کوه. سر هفته گشتند یک سطور سخونهای دیرینه دستان بگفت که با دادی از دان خراب باد جفت حالا که خداوند این برف داده به ما ما باید با خراب بقیه زندگی رو ادامه بدیم نداد خیلی سختی بوده و باید با به بدیم. نشاید بدیم کوه سر بودن. خورش نیست زی درد بباید شدن. پیاده فرستیم کندی براه بیابند روزی نشان سپاه به افران کوه گریان به درد همی هر کسی از کسی یاد کرد. <تصفيق> پادشویی لوست روی سی البته اینجا در این بخش افزوددیی که من بررقدم اینجا می که که کیخص رو برای یل به لو میده و بعد دختران هر افزار ها رو به او می پره همه نادرست برای که یه رویداد طبیعه بود که اود و همه چیز از ب این وقت برای این سعات قع ن ولی خب افزانده با این کار کرد الان ل لوراست... الان پادشاویی لو راست میده فر نه نه, نه. دو اصلاینده این به این صورت چون راست بر تخت به شهست شاد به شاهنشهی تاج بر چون جهان آفرین را ستایش گرفت نیایش و را در فضایش گرفت چون این گفت که از داور داد و پاک باشید و با ترس و باک از این تاج شاهی و تخت بلند نجویم جز از داد و آرام و پند این که میگه که برامید باشید و با ترس و باک این یک گونه از اندیشه است که معمولا در فرهنگ ایران نبوده چون ایرانیان میگفتن که خداوند آفریدگاره ریشه یک کنش آفریدن فری هست فری یعنی عشق و این باجه در آفریدگار هست در آفریدن هست ام و یک نقطه اشتراک بین هر دوتا این است و اون هم فری هست این اشق چون که خداوند با عشق آفرینش رو آغاز کرده و ادامه میده بنابراین به ما داره به ما مهر داره چنانکه ما هم با به او مهر داریم به عشق داریم و در این دائره عشق و مهر رو جو برای تنسبات نیست فقط ما باید با دوستای خداوند این رو ادامه بدیم میبینید که این اندیشه بعدا در نزد بعضی از عارفان ایران و هم هم دیده میشه نگرش و همین به همین فری این که در حقیقت بین خداوند و آفردگان و بین آفردگان و خداوند هست چه که سانی استاد؟ عبو عبوسیق عبورخر شهر خیلی اطرار خیلی از اینا در این بار سبت کردن مولانا مولانا هم گاخ, گاخ. حضرت نمولوی آقا اما خوب اینا همه همه از از رو از عطا رو گرفتند، گرفتن کسانی که پسند شروع از عطا رو از عبوزید عبوخهی گرفتن عطا رو فهمد که مخلوق راه تو زمن بخصیل است که اینجا سر تو با پایانش توی آشقت که گنجدن هم در پیه هم کس که هیبان تو به توی منی همه چیز آشقت تو هستی بنابراین آشد به فیرهن نمیده از شودی. این سخن شد هست و بولش منم. شد عبارت از این بوده که در آسیاب وقتی که این سنگ آسیاب میشرفیده و گندم ها را آرده یه دفعه یه دونه گندوم درستان مثلا شده بشده. در مینه ده هزاز ها گندوم یه گندوم درسته یا مثلا نیم شکرستان پرد بشده. این بهش بودا یعنی یه چیزی که آرد نشده ولی حقیقت گندم درش هست و به همین اولی که میریم از کتاب نوشته شده شتیات. و از از از از از, از بزرگترین آروفانی با ما تونالی با اونجانه بشتی که هرکس متوجه نمیشه این دلیل میگن شهد یعنی مثل اون گندومی که توی آرت آرد افتاده حقیقت آردو داره ولی شعرش ای چیز دیگر تو اصل لذکی که. اینه بهش میاد شد. اجاد عطار بفرمادیم. این سخن شد هست تو در منم. وین سخون. حق است تو برخامش توی. و میدین چیه بین من تو هیچ فاصله نیست. هیچ چیزی نیست. من و یکی هستیم. دوست مرسی که دراز من به من است از خاندیه وین این عجب تر که من از وی دورم چه توان چه توان با که توان گفت که من دوست در کنار منو و من محجورم اگر ما نمی بینیم خدا رو در اندرون خودمون تقصیر خودمون است بسی که او ماست ما نمی تقصیر ماس. عزیزدین نصفی می که یک قدم بر نفس خود نه یک قدم بر کوی دوست هر چی بینی دوست بین با اینو کار نیست این همینو بگرفته از اون فرنگی را نواز کنه همین چیزی که اینجا من بشهش نگرد خب می فهمید. یه بار می خوایید بفهمید این اشاره رو بفهمید چون این بفت که از داور دادو پاک برای می باشید و با ترسون و از این تاچ شاهیدی و تخت بلن نجویم من اکنون که نگاه میکرم میبینم که این, این بیت رو اگر افرادو بگیریم اون دو بیت به هم پیدسته میشه بنابراین زهراست و هم خراف فرنگیران چیزی نگفته دوباره میخونم باید همین نگاه کردم خب این رو مای خود انسان میتونه روحه ما کلشی باشه بله بله شاهراست بر تخت بین شهرس شاد به شاهنشهی تاج بر سر نهاد. جوان آفرین را ستاویش گرفت نیایش برا در فضایش گرفت از این تاک شاهی جا تخت بلند نجوریم جز از داد و حرام و پند و از داد باشید شاد تناسان را از کی این مگیرید یاد محال جوان آفرین خاندن شهر را زمین شرکی را زمین خاند من را من فهمیدم منظورم بود است زیده دیگه جوان هیس که هرم شما یه چیزی تازه ای رو یافی همین رو من برزورم چیز چیزی من چیزی پرمیم پس از به کابوسیان بود دو را شاد یعنی اون از کابوس با خیمونده بودن لوراست با اون آشار بود همیشه زکه که سوش بود یاد. یعنی به اطرافیان زمان توجه نداشت همیشه یاد باستان میکرد همی ریخت زن در درد گشتاس بکن همی گفت هر گونه با رحنمان و می خب ناراحت بود که چرا به ما توجه نبکنیم لوراست شب تیره شبدی زلوه راسپی بی بیاورد با زین گشتاسپی ز زی دینار رو از گوخرش راقبار بیاورد چندان که بودش بکار از ایران سوی روم و نادروی به دل گاهجوی و روان راهجوی پیدر چونز گشتاسپ آگاخ شد به پیچید و شادیش کوتاه شد وقتی که فرمید که گشتاس، یعنی تیری گشتاسپیان رفتن بطرفیم از آن پس همه به خیلان را بخواهم ز گوشتاست چندی سقون ها برام به دیشان که این شیر مرد سر طواج در را, را بگرد یعنی به تلطور را ممکنی بشه چه بینید، این را چه درمان کنیم نه که این برده لحصان کنیم چون این گفت موبد که این یک وقت گرامی به مردان باید آجود تخت به گوشتاست به زین جهان لشکری. بینه در سرش ناندار افسری. یعنی پودشون رو بخشی از ایرانش مکرد فرستاد لحراز چندی نهان بجستن گرفتن گرده جهان ببینید آقای اینجا به دستان نگاه کنید این اندازه ببینید آسان های رفتن گوشتوز پرون خوشتن گرگ و خوشتن اشده ها و خوشتن نمید مبارزه با رومی ها و اینا همه عقصود است یعنی 626 میرسیم به کجا؟ میرسیم به 371 این عقصود است خب از هرده من بخشای رو فرخونی نمیشه اگه بکنم از همیشه اما همی که پیوستگیش این حقیقی را من نکنم فرستاد محراس چند اینه هان به اینه هان به جهان چون اشکر بدیدن کشتاست را سرف راست در پول روح راست را بیاده همه پیش بوده من. خب اون چهنگ ها و ها های دروغ عجیب شگفتی در اینجا که خدا میدونه که کودک نمیتونه نمیتونه پاور کنه خب چون نیست عظمت شانمه بوده و خانان ایرانیان احترام بله همه شانمه قاید بودن فکر خوب. پیاده همه پیش اوی آمدن پر از درد و پر آب آمدند آمدن همه پاک بردن پیشش نماز که کوتاه شد دارن زریر خجسته به گشتاست گفت زریر پسر لغراس بود زریر خوجسته به گشتاست گفت که بادی همه ساله با تخت جفت یا با بخت جفت پدر پیرسه شد تو بینادلی نگر تا در تاجه کهی نکلی به پیری برای بخت خندان شده است پرستنده پاک گزدان شده است در نامه های دیگر نسکل که راست پناه برده یک آتش کدی در, در برخ و مرتب اونجا بود و در اونجا راز دل میگفت این پادشاهی رو خودش کرد فرستاد نزی که تو تاج و گنج سزد گرمه کنون دل به رنج چون این گفت که ایران سر و سر تو راست سرطحات با تخت کشورتون است خب اینجا، میشه میتونیم ما اینجا نگهت داریم برده برده برده برده برده برده برده برده. خب این ادامه داستان رو از شاهنامه پادشاهی لحراس رو شاربا در هفته آیام بخواییم داشت پرمک های دیاریدی از شما آمده تلفون های شما آمده ادازه برید یک چطر پرمک اما یک چطر پرمک ها اینه آه، آه، آه، با سلام و تبدیل که سال نو و نوروز روز باستان خدمت استاد جنیدی و هدایتی ممنون سال برای شما مبارک باشه آیا امکان تهیه کتاب استاد به صورت دیجیتال هست؟ هنوز ما این کار رو بکنیم یعنی برقیقت موجباتی که ما در بنیاد نشابور داریم با تنگ دستی همراه ولی امید داریم بالاخره در درانده این کار رو برقیقت میکنم برای شما چون پیامکهای زیادی اومده او و گفتن شامنامه استاد رو از کجا و چگونه تهیه کنیم و از میکنم خدمتتون از طریق تلفن شما میتونید با تلفن دورواژ یا همان تلفن بنیاد نیشاور هستش این دورواژ یا تلفن هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار هشتاد و هشت و شش بیست و هفت 84. این شما تلفن شماره تلفن بنیاد نژا هستش دور نگاهی و فکس اونجا 88 96 22 40 هست اینطورون تعریف می کنه 88 96 22 40 این شما تلفن این شماره فکس بنیاد نژا پور اش ممیشه از این طریق شماره‌های شما هم های تهیه رو تحییه بفرموید پرمکوی زیادی هست شما اومده من بخوابیم اون سرقی بشنم من هم خوش شدی. آبی بخورم بعد باز خدمتو خیلی در پرامچ اومده استاد در مورد با سفر میکه زیاد اومده در مورد عید نوروز پرسیدن در مورد جشن های ایرانیان پرسیدن من تمکنم ندارم میذارم سایی که ببینم و در مورد شهرها اومده اسامی شهر های ایران اومده یکی پرسیده حالا در مورد تهران بیشتر پرسیدن آه در مورد همدان پرسیدن اینو دقیقاً با چند تا با سلام خدمت استاد جونی و تبریک سال نو خدمت شما حضران و پنجره برنامه پنجره‌های روز مهتاب اسم شهر همدان بر چه اسام اساسی پای ناگوزی شده است. اینو زهره خانم از محشر پرسیده. شاد باشید. این اولا بوده هک بتانه. تانه پس تست کامپیوتر که این تانه در پرسش شد تا حکمان خلاصه شد شد همدان در بعدم خوالان که ما عادت داریم که اسم معنی بکنیم هم همه فکرمونه که یعنی همدان و شعرم فقط هم یارم حمیدانی و خودم هیچ ندانی یارم چگونه دیش ندانی ما حمیدانی عزوزواره فرص کنیم تبریزه رو میگن تبریخته نیست اینجوری نیست اینا دشار که اندر داره و مفاهم بالاتر بیشتر این نام شهرها به معنی جایگاه مثلا الان من برای شما قنده ها رو میگم قندی بوده کند کند یعنی خوب جا، جا، جایگاه دیگه کند رو همونی کشور همونی ده و جا نونش بگفته میشه کت و کت یعنی خانه هستن همه این مفاهمی در خودش داره هارم همونه که بعد تبدیل شد به حال در ارده هال مثلا و همونی که حال که در انگلیسی به معنی از خانه گفته میشه بنابراین قندهار یعنی جایگاه حالش یعنی جای و قندشم یعنی, قندشم یعنی جای. جایگاه. همون چیزی که در جایگاه میگیم جایگاه وقتی میگیم دو, دو بار تکرار میشه یک بار به سور جای گفته میشه یک بار به سور گفته میشه هر دوشه یک معنی داره و ما نو داریم که یه, یه گاه دیگه هم به اضافه شده مثلا در خونگاه، در تیران حالا البته توی خیابون و شهر افتاده ولی اینجا معلوم میشه که یه روزی روستا بوده در خونگاه، در یعنی خانه خون، خان یعنی جا، گاه هم یعنی جا سه بار تکرار شده البته اینا کمی که سه بار تکرار میشه ولی بیشتر شهرها دو بار تکرار میشه که یعنی جای گاه. و البته به همدان بزرگترین دانایانم از همه دان اومدن آه، البته طهران هم یعنی اونم دار هندون گفته، اما این معنیش اون نیست. ببین، چطوره؟ بله. در مورد تهران پرسید، تهران به چه معنی است؟ این به چه معنی است؟ نه این دو تا. من نمی‌دونم تهران یعنی. از کنم که بعضی این از روز ظهر گفتن یعنی تهران یعنی راه روندن به طر یعنی سازا به دروس کردن، حواش کردن، روز رفتن، پلی. در حالی که اینجوری باشه جوهای خیلی که از تهران ممکن باشه بس چرا اونجاها رو تهران نمی این باز یک نوع در حضیشی شناسی آمیان است به چیز رو آقای تو برخشانی در برده در کتابش که این تیکرانه بوده و چون کتابش منتشر نشده من حالا از معنیششون به دستا برده من ماظرا بذری. یعنی چی؟ در اَستوک رگو یعنی روشن. رای در فورسیه فال به معنی روشن هست. مثلا واژه را ونتا یعنی رای ونتال در اَستوک یعنی دارنده روشنایی که شد رای و این ری در واژه رویال فرانسوی به معنی روشن باقی پرموده و به معنی روشن هست. در اصامی پرسیدن پرسیدن شیرین یعنی چه شیرین معلومه که یعنی به, ش... به شکر آمیخته، شکرین بوده شکری. آ... و... یکی از نویسندگان اخیر که یعنی این سخت اخیر که خاص پاسه نویسی بکنه معنی شیرینو شیرین رو نمیدونست آ... و در زمینی تاریخ خیلی کار کرده بود ولي میخواست که فارسی کنه معنی شیرین نمیدنست گفت خب که شیرینی به مزه شیر پس بن چون شیرین به مزه شیر نیست پس نادرسته ما باید به جای این بگیم شلپ از خودش نام نام اختراح کرد نه چنین نیست شیرین بود شکرین که تبدیل به یه میشه یه باشه. مثلا داناک در زمان پهله بوده داناکان شده دانایان که تبدیل به یه شده. نیاکان شده نیا مثلا مثلاً. آماده با نوآوریش شکلی، که استقبالی به یه میشه میشه شیریم بله. خیلی لطیفی هم دوست که این سپاسگزارم. اینکه که زمان دیگه این نمونده به میخواستم خواستم تلفن کارو پخش کنم نمون. چون هیچ وقت پخششون دیگه نمی‌رسیم و برنامه رو زمان برنامه سیار طولانی میشه و دوستان در اذیت میشن سپاسگزارم دوست دارم شادی بوشت. شما شاد باشید. که اصیلکار دارید به این شرکت کردید. مجدد سال نو بن شما مبارک باشید. نوروزتان پیروز. نوروز همه ایرانیان عزیز پیروز باشید. شاد و پیروز باشید ایرانیان رو مجدیدم با آمدن پیش کروز یعنی روز 13 از ماه فروردین که به اصطیپا دسته های سبزی که برای سپاس از خداوند و یعنی سطوره باران فرام شده برن به دشت و این از نسال آب روان بکنن هر کم توجه کنیم که این سبز رو کپوت ماشین گذاشتن و بعد یک گلد بزنیم رو زیر پاپ اندازه این توهین به اون نیروی پاکیز که از سوی خداوند سبزه ها رو سبز میکنیم توهین به الانهی این کار نکنیم آماده باشیم به شادی به استقبال روز تیشتر ب دو میل کرده. تفکر از شما شناسم دکورات که برنامه ای ماروشه برنامه پنجروهای رو متفاوت رو شدید، انشالله سلامت و خوش خور باشید، مراقب باشید در این عیام عیام ایده نوروز و در این روز خوا... اگر در سفر تشویق تا تم مراقبه اندیکی باشی مراقبه همه چیز باشید مراقب خودتون باشید و مراقب فرهنگ سرزمین ازون باشید و سفارش کنید به همه این فرهنگ رو خاندن شاهنامه رو خدا حفظتون کنه سپاس گذارم مثلا که در این برنامه من یاری کردن شب برهمیگی شما ایرانیان مردمان ایران خوش